ش علاقه نیچه به باغبانی هم عملی بود و هم استعاری در هنگام استعفا از دانشگاه بال در 1879 فکر و ذکر نیچه این بود که باغبانی حرفه‌ای شود او به مادر زدش گفت می‌دانی که من به زندگی ساده و طبیعی اولویت می‌دهم و هرچه چه بیشتر به آن علاقه من می‌شوم هیچ درمان دیگری برای تندرستی من وجود ندارد من به کار واقعی احتیاج دارم که وقت بگیرد و بدون فرسودگی ذهنی سبب خستگی شود. او برج قدیمی در نامبورگ نزدیک خانه مادرش را به یاد آورد که وقتی دنبال باقی همجوار می گشت به فکر اجاره آن افتاده بود. نیچه در سپتامبر 1879 زندگی باغبانیاش را با شور و شوق شروع کرد. ولی به زودی مشکلاتی به وجود آمد. ضعف بینایی نیچه نمیگذاشت ببیند شاخ و برگ چه چیزی را میزنند نمی توانست کمرش را به راحتی خم کند برگ های زیادی بر زمین ریخته بود پاییز بود و پس از سه هفته احساس کرد راه دیگری ندارد غیر از اینکه آن کار را رها کند ولی آثار علاقه به باغبانی در فلسفش باقی ماند زیرا در برخی عبارتها پیشنهاد کرد که مثل باغبان ها به سختی های خود بنگری ممکن است گیاهان ریشه های عجیب و ناخوشایندی داشته باشند ولی کسی که به توانایی آنها علم و ایمان داشته باشد آنها را طوری پرورش خواهد داد که گلهای زیبا و میوه به بار آورند در سطح ریشه زندگی هم ممکن است عواطف و آزای دشواری وجود داشته باشد ولی با پرورش و رسیدگی دقیق می توانیم آنها را به بزرگترین دستاوردها و ها تبدیل کنیم آدمی می تواند مانند باغبان با سائقه هایش که از آنها اندک دانشی دارد جوانه های همدردی، کنچکاوی و نخوت را چنان میوهی زیبا دار وستی سازد آدمی می تواند با سلیقه نیک یا بد باغبان چنین کند ولی اکثر ما نمیتوانیم دریابیم که به این نهالهای سختی مدیون هستیم مستعدیم که تصور کنیم استراب و حسادت هیچ چیز خوبی ندارن که به ما یاد بدهند و بنابراین آنها را مثل الفهای هرذ می میکنیم ما به قول نیچه عقیده داریم که بالاتر نمی باید از دل پایین تر بروید و هرگز نمی باید از دل چیزی دیگر بروید هر آنچه در مرتبه نخسته است می باید خود علت خیش باشد با وجود این نیچه تاکید میکند که چیزهای خوب و ستوده با آن چیزهای بد و به ظاهر متزاد باخیش موزیانه مربوطند و به هم وابسته و در هم تنیدند. چه بسا از یک گوهرند. چه بسا. مهرکین، حقشناسی و انتقام، خوشتبعی و خشم به یکدیگر دیگر تعلق دارند. که به این معنی نیست که آنها را باید با یکدیگر نشان داد. بلکه به این معناست که امری مثبت ممکن است نتیجه ای امری منفی باشد که با موفقیت باغبانی شده است بنابراین عواطف نفرت و حسد و آزمندی و شهوت فرمانروایی شرط لازم زندگی هستند که می به طور بنیادی و ضروری در مجموع اقتصاد زندگی حضور داشته باشند. قطع هر ریشه منفی در این حال به معنای جلوگیری از مثبتی است که می توانند از آن در بالای ساغه گیاه برویند. ما نباید از سختی های خود احساس شرمندگی کنیم. بلکه باید از این امر شرمنده شویم که نتوانسته این چیزهای زیبایی از آنها برویانیم. بخش پانزده به علت درک شفاف این مطلب بود که نیچه با دیده تحسین به یونانیان باستان می نگریست. وقتی هنگام غروب به معابد آرام یونانی ها مینگریم، از جمله معابد پایستوم، چند کیلومتر دورتر از سورنتو که نیچه در اوایل سال 1877 با مالویدافون دافان مایزنبوک از آنها بازدید کرد و از وسه می کنیم که یونانی ها مردمی بودند برخوردار از سنجیدگی استثنایی که معابدشان جلوه های بیرونی نظمی بود که در خود و جامعه خود احساس می کردند. این عقیده یوهان وینکلمان دانشمند بزرگ ادبیات یونانی رومی بود و نسلهایی متوالی از استادان دانشگاه آلمان به آن اقیده داشتند ولی نیچه میگفت که تمدن یونان باستان به هیچ وجه از آرامش درونی برنخواسته، نخواسته بلکه حاصل تسعید شیطانی ترین نیروها بوده است هرچه شورها و صداهایی که اصری قومی و فردی می برای خود مجاز شمارند بزرگتر و وحشتناکتر باشد چرا که قادرند آنها را همچون وسایل به کار برند فرهنگ آنان در موضع بالاتری قرار می گیرند. شاید این معابد آرام به نظر برسند ولی آنها گلهای گیاهانی بودند که ریشه های سیاهی داشتند و خوب باغبانی شده بودند جشنهای دیونوسوسی هم نمایشگر جهل بودند و هم نمایاننده مهار کردن و پروردن جهل هیچ چیز ناظر یونان را بیش از این شگفت زده نمی کند که در یابد یونانی ها گهگاه جشن دیونوسوسی را به عنوان بزرگ داشته تمام شورها و تمایلات شرورانه طبیعی برگزار میکردند و حتی نوعی روال کار رسمی برای تجلیل این امور بسیار انسانی به وجود آوردند. آنها این صفات بسیار انسانی را اجتناب ناپذیر میدانستند و به جای دشنام دادن به آنها، ترجیح میدادند این صفات را در کاربردهای جامعه و مذهب تعدیل و تنظیم کنند و نوعی حق رد دوم را به آنها اختصاص دهند در واقع هر چیزی را که در انسان قدرت داشت الهی میخواندند و بر دیوارهای بهشت موعود خود حکم می‌کردند آنها سائقه طبیعی متجلی در صفات شریرانه را انکار نمی‌کردند بلکه آنها را تعدیل و تنظیم می‌کردند به محض کشف معیارهای تجویزی کافی برای کم‌ضررترین نوع هدایت و جهت دهی به این آبهای وحشی آینها و روزهای معینی را به آنها اختصاص می‌دادند. این ریشه کل آزادندیشی اخلاقی دوران باستان است. آزادندیشی که به امر شر و مشکوک آزادی معتدلی می‌داد و در پی نابودی کامل آن نبود. یونانی ها های خود را از بین نمی بردند. آنها را پرورش میدادند شورها همگی نخست دورانی دارند که در آن مایه نگونبختی اند و بس و قربانیان خود را با سنگینی حماقت خود فرو میکشند و دورانی آتی بسیار آتی که در آن با روح ازدواج میکنند و خود را روحانی میکنند در آن روزگاران نخستین آدمی به سبب حماقت شورها به جنگ با آنها بر کمرب نابودیشان میبست امروز به نظر ما نابود کردن شورها و حواسها تنها برای پرهیز از هماغت‌ها و پیامدهای ناخوش هماغت‌هایشان خود نهایت هماغت است. بنابر این روش کار دندان پزشکی که دندان را می کشد تا دیگر درد نکند هیچ جای حیرت ندارد. رضایت خاطر ناشی از واکنش خردمندانه به دشواری‌هایی است که می‌توانند انسان را از هم بگسلند. ممکن است اشخاص زودرنج وسوسه شوند که بیدرنگ دندان آسیا را بکشند یا در حاشیه‌های پایین‌تر پایینتر کوروادش را رها کنند. نیچه به ما اصرار کرد که طاقت بیاوریم. بخش 16 هم. و اصلا تصادفی نبود که از ما می‌خواست هرگز میگساری نکنیم. مادر عزیز، امروز به تو نامه می نویسم تا از یکی از ناخوشایندترین و دردناک ترین رویدادهایی بگویم که باعث و بانی آن بودم. در واقع بسیار بد رفتار کردم و نمیدانم آیا می توانی یا مایلی مرا ببخشی یا نه. با قلبی گرانبار و با بیشترین بی قلم خود را بر می دارم. به ویژه وقتی به گذشته و زندگی خوشایند ایام تعطیلات عید پاک فکر می کنم. دورانی که هرگز هیچ ناسازگاری آن را تباه نکرد. یک شنبه قبل مست شدم و هیچ بحانه ای ندارم غیر از اینکه بگویم از ظرفیت خود آگاه نبودم و شب تقریبا عصبی و حیجان زده بودم. فردریش شهش ساله پس از نوشیدن چهار گیلاس آبجو در عمارت تنبورگ نزدیک مدرسهاش در بهار 1863 این نامه را به مادرش نوشت. چند سال بعد در دانشگاه های بون و لاپسیک از علاقه همکراسی هایش به الکل احساس ناراحتی میکرد. اغلب از طرز ابراز اخوت در باشگاه بسیار نفرت دارم. به سختی می توانم برخی افراد را تحمل کنم. به علت مادهگرایی آبجویی آنها. این روی کرد در سراسر زندگی دوران بزرگسالی نیچه باقی ماند. نوشیدنی‌های الکلی برای من خوب نیستند. یک جام شراب یا آبجو در روز کاملا کافی است که زندگی را برای من به جهان عشق ها تبدیل کند. مونیخ جایی است که در قطب مخالف من زندگی می‌کند. او شکایت می‌کرد که چقدر آبجو در هوش آلمانی است. شاید نارضایتی اروپا در دوران معاصر به این علت است که اجداد ما به ویژه در قرون وسطا به مشروب علاقمند بودند. قرون وسطای یعنی مسمومیت اروپا از الکل. در بهار 1871 نیچه با خواهرش برای گذراندن تعطیلات به هتل دو پارک در لوگانو رفت. صورت حساب هتل از دو تا 9 مارس نشان میدهد که نیچه 14 لیوان شیر نوشیده است. این چیزی بیش از زائقه ای شخصی بود. نیچه به هر کس که میخواهد خوشبخت باشد به شدت توصیه می که هرگز نوشیدنی الکلی ننوشد. هرگز. نمیتوانم به تمامی تبایع روحانی تر با جدیت بسیار توصیه کنم که مطلقا از میگساری دوری گزینند. آب کافی است. چرا؟ زیرا رافائل برای فرار از حسادتش در اوربینو در سال 1504 میگوساری نکرده بود. او به فلورانس رفته و یاد گرفته بود چگونه نقاش بزرگی شود. زیرا استندال هم در سال 1805 برای فرار از نامیدیش درباره مردی که آفریده شده بود تا فرماندار باشد، میگوساری نکرده بود. او این درد را 17 سال باغبانی کرد. و در سال 1822 در باب عشق را منتشر ساخت اگر اکراه دارید که رنج خود را حتی یک ساعت تحمل کنید و دائما از هر نوع بدبختی ممکن حذر کنید اگر هر گونه بدبختی و رنج را شر منفوری می دانید که باید نابود شود چون ضعفی در زندگی است در آن صورت شما در قلب خود پیرو مذهب راحت طلبی هستید متاسفانه شما موجودات راحت طلب و ساده چیز زیادی درباره شور و نشات انسان نمیدانید. زیرا خوشبختی و بدبختی دو خواهر دوغلو هستند که با هم بزرگ می شوند یا در مورد شما با هم کوچک میمانند. بخش انزجار نیچه از الکل در عین حال انزجار او از مکتب انگلیسی رایج در فلسفه اخلاق را تبیین کند. فایدهگرایی و بزرگترین مدافع آن جان استوارت میل به عقیده فایدهگرایان در جهانی سرشار از ابهامات اخلاقی راه قضاوت درباره درستی یا نادرستی عمل اندازگیری مقدار لذت و درد حاصل از آن بود میل می گفت میزان درستی اعمال متناسب است با میزان افزایش شادکامی بر اثر آنها اگر اعمال به امری مخالف شادکامی بیانجامند نادرست هستند. منظور از شادکامی لذت و فقدان درد است. منظور از ناشادکامی درد و محرومیت از لذت است. تفکر فایدهگرایی و حتی ملت مبدع آن نیچه را عصبانی می کرد عوامزدگی اروپا و عوامانگی ایده های مدرن کار و ابداع انگلیس است. انگلیسی است که در پی شادکامی است، نه است. مسلما نیچه هم به دنبال خوشبختی بود او صرفاً عقیده داشت که نمیتوان آنطور که فایده گرایان میگویند بدون درد و رنج به خوشبختی دست یافت همه شیوه های اندیشه ای که ارزش چیزها را بر حسب لذت و درد میسنجند یعنی بر حسب پدیده های فرعی و ثانویه سطحی و ساده لوهانند و هر کس که از نیروهای آفرینندگی و وجدان هنرمندان آگاه باشد بر این اندیشه ها بی پوز خند و همچنین بیدلسوزی فرو نخواهد نگریست این وجدانی هنرمندانه است زیرا آفرینش هنری روشنترین مثال فعالیتی است که می تواند رضایت خاطر شدیدی فراهم کند ولی همواره به رنج شدیدی هم احتیاج دارد اگر استندال ارزش هنری را بر اساس لذت و دردی میسنجید که بیدرنگ تجربه کرده بود از مردی که آفریده شده بود تا فرماندار باشد به قله اوج تواناییهایش نمیرسید. نیچه از ما میخواست که بجای آب جو خوردن در دشتها، رنج سعود از ها را بر خود همبار کنیم. او به شهرسازان هم پیشنهادی کرد. راز تحقق بیشترین باروری از زندگی و کسب بیشترین تمتع از آن عبارت است از زیستن در خطر شهرهای خود را در پای کوه آتشفشان وزوویو بنا کنید و اگر هنوز کسی وجود دارد که میخواهد مشروب بنوشد ولی نظر مساعدی نسبت به مسیحیت ندارد نیچه استدلال دیگری را مطرح کند تا او را از این کار بازدارد عقیده نیچه هر که میگساری را دوست دارد ذاتاً دیدگاه مسیحی معابانه ای درباره زندگی دارد برای اعتقاد به اینکه شراب شادیآور است باید مسیحی بود یعنی به چیزی عقیده داشت که نزد من کاملاً موهوم است بخش هشته هم او درباره مسیحیت بیشتر از الکل تجربه داشت در دهکده کوچک روکن نزدیک لایپزیگ در ساکسانی متولد شد پدرش کارل لادویک نیچه کشیش بود، مادرش به شدت متدین و دختری کشیش دیوید ارنست اوهلر بود که در دهکده پوبلز خدمت می کرد که یک ساعت با روکن فاصله داشت. فریدریش در حضور گروهی از روحانیون محلی در اکتبر 1844 در کلیسای روکن قسل تعمید داده شد. فریدریش عاشق پدرش بود. هرچند در چهار سالگی او را از دست داد ولی در سراسر زندگی به خاطرش اش ادای احترام می کرد. یک بار وقتی پول زیادی نداشت پس از پیروزی در دعوای حقوقی علیه ناشری در 1885 سنگ بزرگی برای قبر پدرش سفارش داد که روی آن جمعه از رساله پولس به قرنتیان حک شده بود. رساله اول پولس به قرنتیان باب 13 آیه 8. محبت هرگز ساقت نمی شود. نیچه چون این خاطری از پدرش داشت، او تجسم کامل یک کشیش دهکده بود، فردی زریف، بلند خوشسیما، دوست‌داشتنی و نیکوکار، همه جا عزیز و محبوب بود، هم به علت شوخ و هم به دلیل همدلی سمیمانش، پیش کشاورزان محترم و محبوب بود، هم در گفتار و هم در کردار به عنوان راهنمایی روحانی رحمت می ولی این عشق پدر و فرزند نیچه را از جرف ترین تردیدها درباره این امر باز نداشت که پدرش و به طور کلی مسیحیت بتواند به دردمندان تسلی دهد مسیحیت را متهم می کنم ترین اتهامی را که تاکنون داد ستانی بر زبان آورده علیه آن اقامه می کنم به نظر من مسیحیت نهایی ترین شکل قابل تصور فساد است کلیسای هیچ چیزی را از فساد خود مسون نگذاشته من مسیحیت را یگان نفرین و لعنتی عظیم یگان تباهی ذاتی عظیم مینامم انسان باید در هنگام مطالعه یهد جدید دستکش کش به دست کند نزدیکی به این همه پلیدی انسان را به این کار وامی در آن همه چیز ترس و بزدلی، خودفریبی و دیده بر خود فرو بستن است آیا باز باید اضافه کنم که در سراسر عهد جدید فقط یک سیمای شاخص وجود دارد که انسان ناچار است به او احترام بگذارد؟ پیلات، حاکم رومی به بیانی کاملا ساده، این روزها مسیحی بودن ناشایست است بخش نوزده هم چگونه عهد جدید در هنگام رویاروی با سختی ها به ما تسلی دهد؟ پبایون این که بسیاری از این دشواری ها اصلاً سختی نیستند بلکه فضیلت هستند اگر کسی نگران ترس و کمرویی است عهد جدید میگوید خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد متا باب پنج آیه پنج اگر کسی نگران نداشتن دوست است عهد جدید میگوید خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و شما را شریر بنامند زیرا اینک عجر شما در آسمان عظیم است لوقا باب شش آیه های بیست و دو اگر کسی نگران شغلی استثمار گرایانه است عهد جدید میگوید. ای قلامان آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید چون میدانید که از خداوند مکافات میراس را خواهید یافت چونکه مسیح خداوند را بندگی میکنید. کنید کلوسیان باب سه آیه های بیست و دو اگر کسی نگران بی است، عهد جدید میگوید سهل‌تر است که شطور به سوراخ سوزن درآید از اینکه شخص دولتمند به ملکوت خدا داخل شود. مرقس باب ده آیه 25 ممکن است بین چنین کلماتی و گیلاسی مشروب تفاوت‌هایی وجود داشته باشد ولی نیچه بر همعرضی ذاتی آنها تاکید می‌کرد. هم مسیحیت و هم الکل میتوانند ما را متقاعد کنند که لازم نیست به نقص های خود و دنیا توجه کنیم هر دو از ما ایراده ما برای باغبانی کردن سختی هایمان را تضعیف می کنند هر دو شانس دستیابی به رضایت خاطر را از ما دریغ می کنند الکل و مسیحیت دو مخدر بزرگ اروپا هستند به روایت نیچه، مسیحیت از افکار بردگان ترسوی امپراتوری روم نشعت گرفته است. بردگانی که دل و جرأت سعود به ارتفاعات کوهستانی را نداشتند. و بنابراین برای خودشان فلسفه ای ساختند که ادامی کرد، رفتارهای حقیرانه آنها دلپذیر است. مسیحیان میخواستند از معلفه های واقعی رضایت خاطر، یعنی مقام و منصب، رابطه جنسی، مهارت اقلانی و فکری، خلاقیت، بهرمن شوند ولی شجاعت نداشتند سختی های را تحمل کنند که لازمه این چیزهای خوب است بنابراین این عقیده ریاکارانه ای را رواج دادند که همان چیزی را لعن و نفرین میکرد که دوست داشتند و به آن متمایل بودند ولی آنقدر ضعیف بودند که نمی نمیتوانستند برای کسب آن مبارزه کنند و همزمان چیزی را می ستودند که دوست نداشتند ولی تصادفا از آن بهره بودند ضعیف بودن به خوب بودن حقارت به فروتنی، فرمان برداری از افراد مورد تنفر به اطاعت و به بیان سریح نیچه، ناتوانی از انتقامگیری به بخشایش بدل شد. به هر احساس زعفی، روکشی از نامی تطهیر کننده دادند و آن را چنین به شمار آوردند. عملی اختیاری، چیزی خواستنی، انتخابی، نوعی عمل، نوعی موفقیت، مسیحیان معتاد به مذهب راحت‌طلبی در نظام ارزشی خود به چیزی اولویت دادند که آسان بود، نه مطلوب و به این ترتیب زندگی را از قوایش توی ساختند. بخش داشتن دیدگاه مسیحی درباره سختی محدود به مسیحیان نیست. به نظر نیچه این امر نوعی امکان روانشناختی همیشگی است. همه ی مادر چون این مواردی مسیحی میشویم وقتی نسبت به چیزی ابراز بی تفاوتی می کنیم که در خفا به آن مشتاقیم ولی از آن بی هستیم وقتی سرخوشانه می گوییم به عشق یا مقام پول یا موفقیت خلاقیت یا تندرستی احتیاج نداریم در حالی که تعم تلخی گوشه های دهانمان را جمع می کنند و وقتی علیه آنچه به طور علنی رد می کنیم جنگ های خاموشی به راه از خاکریز شلیک می از لابلای درختان تکتیر اندازی میکنیم. نیچه میخواست چگونه و مشکلات خود روبرو شویم او از ما میخواست همچنان به چیزهای مورد علاقه خود عشق بورزیم حتی وقتی آنها را در اختیار نداریم و ممکن باشد که هرگز هم به آنها دست پیدا نکنیم به عبارت دیگر در برابر وسوسه تغییر و شریران نامیدن خوبی هایی که دستیابی به آنها دشوار است، مقاومت کنیم شاید زندگی بسیار سوزناک خود نیچه بهترین مثال این الگوی رفتاری